حکایت، بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود در واسط. هر روز مطالبت کردی و سخنان با خشونت گفتی، اصحاب از تعنت وی خست خاطر همی بودند و از تحمل چاره نبود، صاحب دلی در آن میان گفت، نفس را وعده دادن به تعام آسانتر است که بقال را به درم ترک احسان خاجه اولاتر که احتمال جفای بباباند، به تمنای گوشت مردن به که تغازای زشت قصابان